بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحل الفلامیم این کتاب دران شکی نیست ادایتیست برای پرهیزگاران یعنی کسانی که از خداوند میتسند آنانی که بغیب ایمان میارند و نماز خود را با تمام و کمال برپا می دارند و از آنچه چه برایشان روزی گردانیده این خرج می و آنانی که به آنچه چه به تو نازل گردانیده شده و به آنچه پیش از تو نازل گردانیده شده ایمان می‌آورند و از ته دل به آخرت یقین دارند آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت راستینند و ایشان همین هایند رستگارد بدون شک کسانی که کافرند یعنی ایمان ندارند و ایشان یکسان است. از خواه ایشان را اختار بیدیهی اختار ندیهی ایشان ایمان نمی آورد خداوند بر و بر گوشایشان مهر نهاده است و بر چشمانشان فرده است و برای آنان عذابی بزرگ است از جمله مردمان کسانه اند که می گویند با خداوند و با روز آخرت ایمان آوردیم و ایشان در حقیقت ایمان ندارند ایشان چنین می که خدا و مؤمنان را فریب می دهند ولی در واقع جز خیشتن کسی دیگر را فریب نمی دهند و این موضوع را درک نمی کنند. در دلهایشان بیماری است و خداوند بیماریشان را فریب است. و برای ایشان حضابی در ناکیست و سببی آنکه دروغ می گفتند و هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند به تحقیق که ما اصلاح کنیدگانیم آگاه باشید به تحقیق که همینها مفسد اما این موضوع را درک نمی کنند و هنگامی که به ایشان گفته شود ایمان آورید توری که این مردم یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورده اند می آیا ما ایمان آوریم توری که این بیخیردان ایمان آورده اند آگاه باشید و تحقیق که ایشان هم اما نمی دانند. و هنگامی که با مؤمنان ملاقات می کنند ما ایمان آورده ایم ولی هنگامی که با های خود تنها شوند می ما اصلا با شما هستیم. ما صرف مسلمانان را تمسخر می کنیم خداوند به ایشان جزای استهزایشان را می دهد و ایشان را در سرکشی ایشان مقلط می دهد تا سرگردان بمانند آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت خریدند پس تجارتشان سودی نکرد و ایشان رهیاب نیستند مثال ایشان مثال است که آتش افروخت پس چون آن آتش اطراف او را روشن کرد خداوند روشنی ایشان را میبرد و آنها را در تاریکی مطلق میگذارد که چیزی را نبینند. کرند گنگند و کورند بنابراین ایشان براه بر نمی گرند بیا مثال آنها همانند ابر مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی رعد و برد باشند آنها سر انگشتان خود را از ترس مرگ و گوشهای خود می نهند تا آواز سای قرار نشنوند و خداوند هم بر کافران احاطه دارد نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برو باید. هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه میروند. و هنگامی که تاریکی بر ایشان چی شود استاده میشوند و اگر خداوند میخواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی دیناییشان را میبود، حقاک خداوند بر همه چیز تواناست ای مردم پرواردگار خیش را بپرستید آنکه که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شد آنکه برای شما روی زمین را بساتی و آسمان را همچون سخت ساخت و آب را از آسمان فرو آورد به وسیله آن میوه را برای روزی شما برآورد. پس در حالی که حقیقت را میدانید با خداوند همتایانی نیاورید و اگر شما از چیزی که ما وقتاً فوقتاً با منده خود فرو فرستاده ایم در شک هستید پس سوره مثل آن را بیاورید و اگر راست می شاهدان یعنی مددگاران خود را غیر از خدا بخواهید اما اگر این کاران نکردید و هرگز کرده نمی توانید پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتش گیره آن مردمان و سنگ که برای کافران آماده شده است و به کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو می کنند بشارت که واقعا آنها را به است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد هر باری که از میوه های آن روزی داده می می این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود و برایشان چیزهای همانند آورده می شوند. و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آنجا و دارد. خداوند هرگز از این این نمی شود که مسئله بزند و هر گناهی که باشد خواه این مثال پشهی باشد یا از آن در کوچکی بالاتر پس آنهایی که ایمان آورده اند می دانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان اما کسانی که کافر شدند شککنان می گویند خداوند به این مثال چی چیز را اراده کرده است؟ با این مثال بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را رهیاب می و با این مثال گمراه نمی کند مگر فاسقان را کسانی که پیمان خداوند را بعد از استوری آن می و چیزی را که خداوند به پیمان و اتصال آن امر کرده قطع می کند و در روی زمین فساد می کند ایشان همین ها انزیان کار چگونه از خدا این کار می در حال که زندن نبودید پس او شما را زنده گردانید و باز شما را می و باری دیگر شما را زنده میگرداند. و باز به سوی او بازگشت می رمانید. او است که برای شما هر آن را در زمین است بیافری سپس قصد آسمان کرد و آنها را به هفت آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست بیادار که چون پروردگار تو با فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه را بیافری نم. فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه میگردانی که در آن فساد میکند و خون می ریزد؟ در حالی که ما به و ستایش تو را با جا می آورید و تو را تقدیس می رومایید. خدا گفت حقا من می دانم را که شما نمی دانید خداوند برای آدم اسماء یعنی اصراع را آموخت. باز آن را به فرشتگان پیش کرد و گفت اگر شما راست بو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید آنها گفتند پاکی تو ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی براستی که تو و تنها تو دانا و حکیمی خداوند گفت ای آدم فرشتگان را از نامها یعنی اسرار اشیا آگاه گردان انگامی که آدم نامهای آنها یعنی اسرار را گفت خداوند فرمود، آیا من به شما نگفته بودم که من و تنها من به اسرار آسمان‌ها و زمین آگاه هم؟ و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می دانم و بیادار چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس او از امر خداوند ایبا ورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود. و گفتیم ای آدم تو هم سرت در بهشت بسر و از های فراوان آنجا هرچی که بخواهید بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگاران خواهید شد سپس شیطان آنها را از آنجا لغزاند و ایشان را از آنچه یعنی خوشنوگی که در آن بودند بیرون کرد گفتیم فرود دایید در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگری خیش خواهید بود و برای شما تا مدتی بر زمین جای سکونت و وسایل زندگی فراهم می باشد سپس آدم از پروردگارش کلیمات را دریافت و پروردگارش توبه او را پذیرفت به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است گفتم همه شما از اینجا فیرو دایی پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد کسانی که هدایت ما را پیروی کنند برایشان خوفی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند و کسانی که کافر شده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جا جودانه به سر می برند بنی اسرائیل بیا دارید از آن نعمت های را که بر شما ارزانی کردم و به پیمانی که به من بستعید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید در حالی که این کتاب تصدیق کننده همان کتابی است که با شما می باشد و شما نخستین این کار آن نباشید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز مفروشید و تنها از من بترسید حق را به باطل مایانی و حق را پنهان نکنید در حالی که می فهمید نماز را به تمام و کمال ادانومایید زکات را بپردازید و با رکاق کنندگان رکاق نمید یعنی نماز را به جماعت بگذارید آیا مردم را به نیکوکاری امر می کنید و خود را فراموش می دارید در حالی که کتاب را می آیا درک نمی کنید؟ و به شکیبایی و نماز یاری خداوند را بجوید و این واکن ایران است مگر برفیروتنان آنهانی که باور دارند که با پروردگار خود ملاقی می شوند و یقینا ایشان به سوی او باز می گردند ای اسرائیل آن نعمتهایی را که من با شما ارزانی کردم یا دارید و نیز به یاد دارید که من شما را بر همه جهانیان برتری دادم و از روزی بترسید که هیچ کس از هیچ کسی دیگر عذاب را دفع نمی کند و نی برای آن شفاعت قبول می شود و نی از آنی وزیف زیرفته می شود و نی هم به ایشان یاری داده می شود باید دارید وقتی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم ایشان به شما عذاب‌های های شدیدی می پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما آزمایش بزرگی بود از طرف پروردگار شما و بیا دارید وقتی را که برای شما در یاراشی گفتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که شما مشاهده می کردید غرق کردیم و به دارید وقتی را که برای موسی چهل شب مقرر کردیم و شما در غیاب او گوساله را خدا گرفتید در حالی که شما به این عمل خود ستمگار بودید بعد از آن شما را عفا کردیم تا باشد که سپاسگزار شوید و به دارید وقتی را که به موسی کتاب و فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل را دادیم تا باشد که رهیاب گردید و بیا دارید وقتی را که موسی و قوم خود گفت ای قوم من به تحقیق که شما با خود ستم کردید به این که گوساله را با خدایی گرفتید پس به سوی گاری خیش برگردید و پس خود را بکشید این کار برای شما بهتر است در نزد آفریننده شما سپس خداوند توبه شما را پذیرفت حقا که او بسیار توبه و مهربان است و بیا دارید وقتی را که گفتید ای موسا تا خداوند را آشکار نبینیم به تو هرگز ایمان نمی آورید پس شما را سایقه گرفت در حالی که می دیدید سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانیدیم تا باشد که سپاس گذار شدید و ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من و سلوه فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزهی که با شما روزی داده بخورید با ما ستم نکردند بلکه با خود ستم میکردند و یاد دارید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و دروازه با فیروتنیم درایید و بگویید خدایا گناهان ما را بیا در حالتی درایید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع عباشی تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم اما ستمگاران آن کلیمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند بنابران ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب شدن عذاب را از آسمان فرو فرستادیم و بیا دارید وقتی را که موسا برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن دوازده چشم جوشی هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان و تبحکاری دست نیازید و با دارید وقتی را که گفتید ای موسا ما هرگز برای همیشه به یک نوع قضا نمی کنیم پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما از چیزی بدهد که زمین می رویاند از سبزی جات آن، تره با بادرنگ آن، سیر گندم آن آدس آن و پیاز آن موسا گفت آیا چیز بهتر را به چیزی پس تبدیل می کنید؟ به شهر فرودایی حقا که برای شما هر چیزی را خواسته باشید موجود است و بر ایشان مهر خواری و ناداری زده شد و به قهر خداوند بازگشتند این خواری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار میکردند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند اینا سببی بود که ایشان عصیان میکردند و تجاوز کار بودند به تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و سابیها هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کاری نیکو کند مزدشان به نزد پروردگارشان است نی بر ایشان ترس است و نی هم ایشان اندو می شوند و بهیا دارید وقتی را که از شما پیمانی استوار گرفتیم و بر بالای سر شما کوه تور را بلند کردیم. گفتیم چیزی را که با شما داده ایم یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یا دارید تا باشد که از خدا بترسید. بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود بدون شک در جمله زیانکاران می بودید و حقی که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روزشان شنبه تجاوز کردند ایشان را گفتیم به شکل بوزینه ظلیل شده درایید و نكالا این يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ترتیب آن واقعه را مایه عبرتی برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پندی برای آنانی که از خدا می گفتند از پروردگار خود بخوا به ما بیان کند که آن گاو چگونه است گفت خداوند می فرماید این گاویست نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده بلکه میانه بین این دو پس آن چرا به آن معمول شده اید بجارید گفتند برای ما از پرواردگار خود بخوا تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد گفت خداوند میگوید گوید بشک آن گاویست زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است گاو بر ما موب هم شده است اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رهیات خواهیم شد گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی است که نه مهنت قلبه زمین و نی آبیاری کشت را کشیده است سالم است و بیداغ و لکه گفتند اکنون سخن راست را آوردی سپس ایشان آن گاو را زبحه کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را زبحه ماید و باید دارید وقتی را که شخص را کشتید و در مورد آن جنایت در بین خود به نظا افتادید اما خداوند آشکار است آنچی را شما پنهان می کردید پس گفتیم آن جسد را با پاره از آن گاو بزنید این چنین خداوند مردگان را زنده می کند و به شما آیات خود را نشان می دهد تا باشد که شما درک کنید پس از آن باز دلهای شما سخت شد به درجه سنگ یا از آن هم سختت بعضی از سنگ ها هستند که از آنها جوی ها جاری می شود و برخی از سنگ ها هستند که شک می شوند و از آنها آب می براید و هم سنگهایی اند که از خشم خداوند فرو می و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست ای مسلمانان آیا توقعع دارید که ایشان و آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آنکه حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده‌اند ملاقات می‌کنند می‌گویند ایمان آوردیم اما وقتی که با یکدیگر در خلوت می‌بینند می‌گویند آیا به ایشان چیزی را می‌گویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب وسیله آن با شما با حضور پروردگار شما مناظره کنند آیا شما به نتیجه این کار پای نمیبرید؟ آیا آنها نمی دانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می دارند خداوند می دانند؟ و برکه از ایشان مردم اومی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکیم نیستند پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است؟ تا به دین ترتیب به وزی آن به های ناچیز به دست آورند پس وای بر ایشان در برابر آن چه دست هایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آن چه از این عمل خود کسب می کند و گفتن به تحقیق که ما را آتش دوزخ جز چند روزی محدود تماس نمی کند به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقص نمی کند این که درباره خداوند چیزی را میگویید که نمی دانید. نخیر آنانی که گناه را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است پس همین هایند دوزخی ایشان در آنجا همیشه می مانند. و آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند همین هایند بهشتی ایشان در آنجا جودانه به سر می برد. و به یاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیزی دیگری را نپرستید با پدر و مادر خیشاوندان یتیمان و بینوایان رفتار نیکو ورزید با مردم به نیکویی حرف زنید نماز را به تمام و کمال ادا نمایید زکات را بپردازید سپس همه شما جز ععدۀ کمی به گونه اعراض از آن روح گردانی دید و بیاد آورید وقت را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزی و یک دیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بر آن گواه بودید باز این شما هستید که یک خود را میکوشید گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید به بزید ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یک دیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر با شما می آیند فدیه ایشان را می دهید. در حالی که تعلید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و از قسمت دیگری انکار می کنید پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به با شدیدترین آزاد در آخرت چیزی دیگری نیست و خدا وند از کردار شما غافل نمی باشد آنها کسانه اند که زندگی این دنیا را به بدل آخرت خریدند بنابراین از عذابشان تخفیف دادن نمی شود و نی هم ایشان کمک می شود حقا که و موسا کتاب را دادید و به تحقیب او پیانبران را فرستادید به ایسا پسر مریم معجزات روشن دادید و او را با روح القدس تعیید کردید آیا هرگاه رسول نزد شما با چیز آمد که مخالف هوای نفس شما بود در برابر او تکبر کردید بعض را تکذیب نمودید و بعضی را میکشید ایشان می دلهای ما در غلاف است نخیر بلکه به سبب کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است پس تعداد اندکی از ایشان ایمان می آورند و که به ایشان از جانب خداوند کتاب آمد کتابی که تصدیق لهنده چیزی بود که در نزد ایشان می باشد یعنی تصدیق لهنده تورات بود از آن انکار ورزیدند و از پیش آن را وسیله پیروزی خیش بر کافران یعنی مشرکان می پنداشتند پس وقتی که به ایشان چیز آمد که آن را می و باید به با آن اعتراف میکردند، از آن انکار کردند پس لعنت خداست بر کافران چی بده است چیزی که با آن نفسهای خود را فروخته اینکه این که به آن چه خدا فرستاده است کافر شدند، از روی حسادت بر اینکه خداوند به هرکی از بندگان خود که بخواهد ویه نازل می گرداند، پس خشمی بالای خشم دیگر آنها را فرو گرفت و برای کافران عذابی رسوا کننده است، شون به ایشان گفته شود به آنچه خدا وان فرو فرستاده است ایمان آرید می گویند ما به چیزی ایمان می آوریم که برای ما فرو فرستاده شده است و ما برای آن رد می کنند در حالی که همان چیز حق است و تصدیق کننده کتابی است که به ایشان آمده است بگو اگر واقعا ایمان دارید پس چرا پیش زین پیامبران خدا را می که موسیٰ به شما موجزه های را آورد ولی بعد از آنکه که وی به کوهی تور رفت گوساله را به خدایی گرفتید و شما ستم گارید و یاد دارید که از شما پیمان استواری گرفتیم و کوهی تور را بالای شما قرار دادیم و گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و محبت گوساله به دلشان آمیخته شد به سبب کفرشان بگو بدست چیزی که شما را ایمان شما به آن عمر می کند اگر مؤمن هستید بگو اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شماست نی برای کسی دیگر و اگر در این ادعای خود صادق هستید پس مرگ را آرزو کنید اما ایشان به سبب آنچه هایشان ها از پیش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد و خدا خداوند ستمکاران را خوب میشناسند تو ایشان را واقعا به زندگی دنیا حریسترین مردم میابید و حریستر حتی از کسانی که شرک آورده اند. هر یک از ایشان آرزو دارد که ای کاش با وی عمر هزار سال داده شود ولی دادن چنین عمر هم او را از عذاب آتش دوزخ نجات دهنده نیست و خداوند به چیزهایی که آنها می کنند بیناست بگو هر آن که دشمن جبرائیل باشد پس به تحقیق هم او است که وحی را به حکم خداوند به دل تو نازل گردانی در حالی که آن وحی تصدیق کننده کلام است که قبل از آمدن وحی به تو نازل شده بود و رهن ما و بشارت دهنده است برای مؤمنان هر آن که دشمن خداوند فرشتگان پیامبران خداوند جبرائیل و میکائیل باشد کافر است پس شک خداوند دشمن کافران می باشد و به تحقیق به تو آیاهای روشنی را فرو فرستادی، و جز مردم فاسق هیچ کس از آن انکار نمی کند آیا اینطور نیست هر باری که پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را به دور افکندند، واقعیت امر این است که اکثر ایشان ایمان نمی و هرگاه و ایشان از جانب خداوند پیامبری به حیث تصدیق کننده چیزی که با خودشان است آمد گروهی از آنها که برای ایشان کتاب داده شده است کتاب خداوند را پشت سر انداختند گویی که با آن پای نمی برند. و ایشان از چیزی پیروی کردند که آن را در عهد پادشاهی سلیمان شیطان ها می خواندند سلیمان هرگز کافر نشد بلکه این شیطان ها بودند که کفر را اختیار کردند به مردم جادو می آموختند و نیز چیزهای را که در بابل بر فرشتگان هاروت و ماروت فرود آورده شد این دو فرشته هیچ کس را چیز نمی آموختند مگر آن که می گفتند ما صرف برای آزمایش هستیم پس مرتکب کفر ما مردم از این دو فرشته چیزهای را می که با بکار بردن آنها میان شوهر و زنش جدایی می افکندند. اما با این کار خود تا خدا نمی خواست به هیچ کس ضرر رسانیدن نمی توانستند. و ایشان چیزی را می که برایشان ضرر می رسانید و سود بار نمیآورد. و آنها واقعا خوب می دانستند. کسی که جا را برگزید از آخرت بهره ندارد و چی بد بود چیزی که خود را به آن فروختند اگر می دانستند. و اگر ایشان ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند که پاداششان نزد خداوند بهتر می بود اگر می دانستند. ای مؤمنان با پیامبر عینم مگویید بلکه انزور نبی یعنی پیامبر را به الفاظ خطاب نکنید که از آن تعبیر اهانت آمیز شود و با گفته او گوش بدهید کافران را عذاب در ناکست نی آنانی که از جمعه اهل کتاب کافر شده اند و نی مشرکان هیچ کدامشان نمی خواهند که از پروردگار شما و شما چیزی از نیکویی نازل شود اما خداوند هرکی را بخواهد بر رحمت خاص خیش اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است ما اگر وحی را نسخ کنیم یا آن را به فراموشی بسپاریم سپس بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر همه چیز قدرت دارد. آیا نمیدانی که پادشاهی آسمارها و زمین از آن خداوند است؟ جز خدا شما را نیکار سازیست و نی هم نیهم یاریدهنده؟ آیا میخواهید از پیانبر خود همانگونه سؤال کنید که از موسا قبلا سؤال شده بود؟ و هر کسی که ایمان را به کفر بدل نماید بدون شک راه راست را گم کرده است؟ بسا از اهل کتاب آرزو میکنند اگر شما را بعد از ایمان آوردن شما به کافر برگردانند و این از حسدی است که بعد از روشن شدن حق به ایشان از هایشان نشعت کرده است پس ایشان را آفا و گذشت کنید تا خداوند فرمان خود را اجرا کند حقا که خداوند بر همه چیزها قدرت دارد و نماز را به تمام و کمال برفا دارید و به ادای زکات بپردازید هر نیکویی را که شما به خیشتن از پیش بفرستید مزد آن را نزد خداوند باز میابید به تحقیق که خداوند به آن چی بیناست و گفتند هیچ کسی تا یهود و نصارا نباشد به بهشت راه نمیابد این آرزوهای باطلشان است برایشان بگو اگر راست میگوید دلیل خود را بیاورید نخیر هر کسی که خود را با خدا تسلیم کند در حالی که نیکو کار باشد مزد خود را نزد پروردگارش مییابد نه ایشان را ترسیست است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند یهودیان گفتند نسرانیان بر چیزی نیستند و نسرانیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند حال آنکه ایشان کتاب آسمانی را می خانند. کسانی که نمی دانند یعنی مشرکان نیز مانند سخن ایشان گفتند ولی خداوند در بین آنها در مورد آن چه بر آن منازع دارند در روز قیامت قضاوت می کند. و کیست بیدادگردتر از کسی که معنه کرد از اینکه در مساجد نام خداوند گرفته شود و در خراب کردن مساجد کوشی ایشان حق آن را نداشتند و ندارند که جز با ترس به مساجد داخل شوند برای آنها در دنیا رسواییست و در آخرت عذاب بزرگ است مشرق و مغرب از آن خداست به هر سوی که رو آرید همان جا حضور خداست به تحقیق که خداوند گشایش گر و داناست گفتند خداوند برای خود پسر گرفت منظه هست او حقیقت این است که هرچی در آسمان ها و زمین است از آن او می باشد و همه چیز به او فرمان بردار هستند ایجادگر آسمان ها و زمین است و هرگاه او به چیزی دستور دهد پس بیگمان به آن میگوید شو و آن چیز می شود. آنانی که علم ندارند میگویند چرا خداوند با ما سخنده میگوید یا چرا به ما نشانهای نمی آید همانند این چیزها را کسانی میگفتند که پیش از ایشان بوده اند. مثل گفته ایشان دلهای آنها مشابه است ما بدون شک نشانه خود را برای قومی که یقین دارند بیان کردیم بیشک ما ترا به حق به حیث مجدعا و, و بیم دهنده فرستاده ایم و از تو در مورد اهل دوزخ سوال نمیشوند یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی تا تو از دین ایشان پیروی کنی و ایشان بگو حقا رهنمایی تنها همان رهنمایی خداوند است هرگاه بعد از آنکه به تو آگاهی حاصل شد اگر از آرزوهای ایشان پیروی کنی در آن صورت برای تو در برابر عذاب خداوند نی سازی خواهد بود و نی هم مددگاری آنانی که به ایشان کتاب را داده ایم و حق تلاوت آن را ادا می کنند همان هایند کسانی که به آن ایمان دارند اما کسانی که از آن امکار ورزند همانها یند ای بنی اسرائیل از آن نعمتی که به شما ارزانی کردم بیا دارید و از این نیز که من شما را بر همه جهانیان برگزیدم. و از آن روزی بترسید که هیچ کسی از کسی دیگر چیزی یعنی عذاب را دفن نمی کند و نی از او عوض قبول خواهد شد و نی با او شفاعت سودی می و نی هم ایشان یاری داده می شود. بیادار وقت را که ابراهیم را پروردگارش به سخن چند آزمود که وای آن را انجام داد خداوند گفت حقا که من تو برای مردم پیشوا می گردانم. ابراهیم گفت و از دودمان من نیست خداوند گفت عهد من به ستمگاران نمی رسد و بیا دارید وقتی را که ما خانه کعبه را برای مردم مرجعی و جای امنی گردانیدیم و گفتیم از مقام ابراهیم نمازگاهی بگیرید و با ابراهیم و اسماعیل قرار گذاشتیم تا خانه مرا برای تواف کنندگان اعتکاف کنندگان رکوع کنندگان و سجد کنندگان پاک سازند و بیا دارید وقتی را که ابراهیم گفت پروردگار من اینجا را یک شهر امن بگردان و مردم آن را از میوه‌ها روزی بدی آن اده از ایشان را که با خداوند و روزی رستاخیز ایمان دارند خداوند گفت بلی کسی را که کافر می شود برای مدت کوتاه او را بهرمند می سازم و سپس او را به به آتش میکشانم و چی بد جایست دوزخ و بیا دارید وقتی را که ابراهیم و اسماعیل تهدا خانه کعبه را به این دعا بلند کردند پروردگار ما این خدمت را از ما بپذیر به تحقیق که تو تنها توی شنوا و دانا پروردگار ما ما را فرمانبردار خود بگردان و از دودمان ما نیز امتی بیافرین مسلمان که تسلیم فرمان تو باشند مناسک ما را به ما نشان بده توبه ما را بپذیر حقا که تو و تنها تویی توبه پذیری مهربان پروردگار ما درمیان ایشان پیامبری را از بین خودشان مبروس بفرما که آیات تو را به ایشان بخواند و با ایشان کتاب و حکمت بیاموزد و ایشان را پاک گرداند با تحقیق که تو صاحب قدرت منعی و با حکمتی و کیست آن که کی از کیش ابراهیم روبی بگرداند مگر شخص صفیحی که خود را نشناسد. حقا که ما ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و به تحقیق که او در روزی رستاخیز از صالحان است و بیا دارید وقت را که پروردگارش به او گفت تسلیم شو گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم ابراهیم فرزندان خود را با این وسیت کرد و یعقوب نیز عین وسیت را نمود ای پسر من حقا که خداوند دین اسلام را برای شما برگزید پس نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید. آیا شما در وقتی که یعقوب را مرگ فرارسید، رسید حاضر بودید چون به فرزندان خود گفت بعد از من چی چیز را می‌پرستید؟ اون گفتند خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را می‌پرستیم. خدای یکتا را. و ما به او تسلیم هستیم آنها امتی بودند که بیگمان گذشتند هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب کردید از آن شماست و شما از اعمال ایشان مورد سوال قرار نمیگیرید. و اهل کتاب گفتند یهود یا نصرانی باشید تا رهیاب شوید برایشان بگو نخیر بلکه آین خالص و پاک ابراهیم را پیروی میکنیم و او از مشکان نبود بگوید ما به خداوند و آنچه به ما و به ابراهیم اسماعیل، اسحاق، و یعقوب و دودمان او وحی شده ایمان داریم و آنچه به موسا و عیسی داده شد و آنچه به همه پیانبران از جانب پروردگارشان داده شده است ما در میان هیچ یک از ایشان تفریق نمی کنیم و ما به خداوند تسلیم هستیم اگر ایشان به مانند آنچه شما به با آن باوردارید ایمان آرند پس ایشان واقعا رهیاب شده اند اگر سرپیچی کنند پس ایشان واقعا در شقاق یعنی از حق جدا شده اند و زود باشد که خداوند شر ایشان را از تو باز دارد و اوست شروای دانا رنگ خدایی و کیست که از خدا رنگی بهتر داده بتواند و ما تنها او را عبادت میکنیم بگو آیا شما در شان خداوند با ما منازیه میکنید در حالی که او پروردگار ما و پروردگار شماست و ما مسئول کردار خود هستیم و شما هم مسئول کردار خود و ما به او مخلصیم آیا می گوید که ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب و دودمان او یهود یا نسرانی بودند بگو آیا شما بهتر می دانید یا خدا کیست ستمگارتر از کسی که شهادتی را پنهان می کند که از جانب خداوند نزد بست؟ و خداوند از آنچه می کنید بیخبر نیست آنها مردمی بودند که به اگمان گذشتند هر آن چه کسب کردند از آن ایشان است و هر آن چه شما کسب میکنید از آن شماست شما از آن چه ایشان میکردند مورد سوال قرار نمی گیرید. از این پیامبران ما بعضشان را بر بعضی دیگری برتری دادیم از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد به عیسی پسر مریم ما نشانه روشنی دادیم و او را به روح القدس تأید نمودیم اگر خداوند می خواست آنهایی که بعد از این پیامبران بودن پس از آن که نشانه های روشنی به ایشان آمد با هم جنگ نمی کردند. ولی ایشان اختلاف و زیدن پس بعضی از ایشان ایمان آوردن و بعضی از ایشان کافر شدند. اگر خداوند می خواست ایشان با دیگر جنگ نمی کردند، اما خداوند آنشه بخواهد به خواهد می کند ایم امینون از رزقی که ما و شما کرده ایم خرج کنید پیش از اینکه روزی فرارسد که در آن نی خرید و فروشی میسر باشد و نی دوستی و نی هم شفاعتی را مستحق شوید و کافران هم ایشانند ستمگار خداوند معبودی جز او نیست زنده و به خود پائنده است نه او را پینه کی میگیرد و نه هم خواب هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن اوست چی کسیست آن که به حضور او شفاعت کند مگر با اجازه او آنچی را که در پیش روی و پشت سر بندگان است میداند و ایشان به چیز از علم او احاطه کردن نمی توانند مگر به آنچه که او اراده کند کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد و او بسیار بلند مرتبه و بسیار بازمت است در دین اکراهی نیست بیشک رحیابی از گمراهی جداشت است پس کسی که از شیطان روی می و به خداوند ایمان می آورد به دستگیرا مستحکمی چنگ زده است که هرگز گوسستنی نیست و خداوند شنوا و داناست خداوند یاور مؤمنان است ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد. و کافران یاوران شان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکیها می کشاند هم شاند اهل دوزاخ و در آن همیشه با برای تو و سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم در پروردگارش مجادله نکرد از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود انگامی که ابراهیم گفت پروردگار من است که زنده می گرداند و می میراند. آن شخص گفت منم که زنده می کنم و می میرانم ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می آورد پس تو آن را از مغرب برار آن کافر مبهوت و درمونده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند یا مثال شخصی را که از دهکده گذشت که بر سقفای خود فرو ریخته بود گفت تا خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند پس خداوند او را صد سال بی سپس او را برانگیخت یعنی دوباره زندگردانی و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید یک روز یا قسمتی از روز درنگ کرده باشم خداوند گفت نه بلکه صد سال درنگ کردی به غذا و نوشیدنی خود بیبین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود بیبین و برای اینکه که ترا نشانه و مردم بگردانیم و به سوی این استخانها یعنی استخانهای خر بنگر چگونه آنها را از جای آن بالا میکنیم و به هم پایان میدهیم باز آنها را با گوشت میپوشانیم. اندامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت میدانم که بیشک خداوند بر هر چیز توانست. و بهخاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگار برایم بنما که چطور مردگان را زنده می خداوند گفت آیا باور نداری ابراهیم گفت چرا نه ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم؟ خداوند گفت سپس چهار نوع از پرنده بگیر سپس آنها را به هم آور یعنی تو تتو تکن و به هم آمیز بعد از آن بر هر یک از این کوها قسمت از آنها را بگذار سپس آنها را بخار ایشان با سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت ملعین و ما حکمت است مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گوشایش گرو دانه آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرچ می کنند و در نفقهی که کرده ان منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند برای شان سوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندرگین می شوند سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است خداوند بی یاز و صاحب حلم است برای ایمان خیرات خود را با منتگذاردن و آزار دادن باطل نکنید مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج میکند و نه با خداوند ایمان دارد و نه هم به روز آخرت پس مثال وای به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی بدست آورند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد مثال آنانی که دارایی شانده برای طلب رضای خداوند و, و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند مانند باقی است در جای بلند باران تند بر آن می بارد و آن را دوچند می سازد و اگر باران تند به با آن نرسد شب نمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما می کنید بیناست و یا یکی از شما دوست دارد که باغی از درختان خورما و انگور داشته باشد که جوی بارهای در زیر آنها جاری باشد. در آن باغ همه اقسام میوهها موجود باشد. صاحب آن باغ با پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ در گرد بادی آتشین گیر آدوبه بدین ترتیب خدا وند آیات خود را به شما بیان می کند تا تا باشد که شما فکر کنید ای مؤمنان از چیزهای پاکیزهی که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما زمین برآورده ایم خرش کنید و در صدد چیزی ردی یعنی غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را می دهید در حالی که خود شما آن را نمیگیرید مگر آنکه از عیبی که در آن است چشم بپو و بدانید که خداوند بینیاز و ستوده است شیطان شما را به فقر وعده دهد و به فحشا امر می کند مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده و دهد وخداوند گشایشگر و داناست خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر کی را حکمت داده شد واکن برایش خیر بیکران داده شده است و پن نمیگیرند مگر خیردمندان و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نظر می پردازید با یقین خداوند آن را می داند و برای ستمکاران یاری دهنده نیست اگر شما آشکارا صدقه بدهید این هم خوب است ولی اگر شما پنهانی صدقه بدهید و آن را به کسانی برسانید که واقعا نیازمندند برای شما بهتر است از شما بعضی از گناهان شما را می زداید. و خداوند به آنچه می کنید آگاه است رهیابی ایشان به تو ای بر نیست بلکه خداوند هر کی را خواهد رهیاب می سازد هر چیزی را که شما از خیر می پردازید نفع آن به خود شماست و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای خداوند و هر خیری را که می دهید و شما ثواب آن تماما میرسد و با شما ستم نمی شود خیرات و نیازمندانی داده شود که در راه خدا محسوس شده اند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند شخص بیخبر از حالشان از سبب خیشتنداری فکر می که توانگرند ایشان را سیما ایشان می شناسید. ایشان مسرانه از مردم سال نمی کنند و چیزی را که از دارایی خرج می کنید که خداوند و آن داناست اونهایی که دارایی خود را در راه خدا شب و روز پنهان و آشکارا می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است برای ایشان نی خوفیست و نی هم ایشان اندوگی می شود که سود می خورند در قیامت بر خیزند مگر مانند برخاستن کسی که حوات او را شیطان به نسبت تماظ مختل ساخته است این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است چون کسی که پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از سودخاری نظر کرد پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست و کسی که با این عمل برگشت پس چنین مردم اینهاین دوزخی ایشان در آن همیشه میمانند خداوند سود را نابود میسازد و صدقات را عقزون میگرداند و خداوند هیچ ناسفاسی کاری را دوست ندارد آن هایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند مزد ایشان نزد پروردگار است نی بر ایشان خوفیست و نی هم ایشان اندوگین می شود ای مؤمنان از خدا بترسید و آنچرا از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید اگر سودخواری را رحا نکردید پس به جنگ از طرف خدا و رسولش کاماده باشید ولی اگر توبه کردی در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شماست نی ستم می کنید و نی هم به شما ستم می شود اگر اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد پس برای او مهلت است تا توانگری و اگر قرض خود را برای او ببخشید این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید و از روز بترسید که در آن به سوی خدا خداوند بازگردانیده می شوید سپس هر شخصی چیزی را که کسب کرده است تماماً به او داده می شود و به اینشان ستم نمی شود رعی مؤمنان. شون به معیار معین و قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا به او آمخته است از نوشتن آن ایوا نوازد پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر با اوست باید املاک کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون کم کند هرگاه مدیون صفی یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد پس ولی او صادقانه املا کند و دو گواه از مردان خود بگیری و اگر دو مرد نباشد پس یک مرد و دو زن گواه شوند از شاهدانی که به گواهیشان گزامند باشی تا اگر یکی از ایش گشرا یاد دهانی نمایند، و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن وا نورزند و از این ملو نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار و قید مدت آن بنویسید. این نوشتن در نزد خدا تر و برای گواهی تر است و نزدیکتر تر است به اینکه به شک نیفتند. مگر آنکه تجارتی باشد که آن را بین خود دست دست کنید در این صورت و شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نی کاتب و نی گواه شوند و اگر چنین کنید این است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما میاموزد و خداوند به همه چیز داناست و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید پس گیری لازم است قبض شده و اگر یکی از شما به دیگری اعتماد میکنید پس باید همان کسی که با او اعتماد شده امانت یا زمه خود را ادا کند و باید از خدای پرودیار خیش بترسد و شهادت را کتمان مکنید و هر کس که آن را کتمان کند بیگو دل او آغشته به گناه هست و خداوند و هر چیزی که بیکنی داناست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خدا و آنچه را در دلهای شماست خواه آشکار کنید یا پنهان خداوند شما را به آن محاسبه می کند پس هر کسی را بخواهد میآمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند به هر چیز تواناست پیانبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد و مؤمنان نیست همه با خدا فرشتگان کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند. آنها می گویند هیچ یک از پیامبران او فرق نمی بزاری. و گفتند شنیدیم و فرمان بردیم خواهان آموزش تو هستیم ای پروردگار ما و سوی توست بازگشت خداوند هیچ کسی را به کار مکلف نمی سازد مگر به اندازه توان او. برای اوست هرچی کسب کرد و بر زیان اوست هرچی را متکف شد پروردگار ما اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مگیم ای پروردگار ما همان گناه باری گیرانی که بر پیشینیان ما گذاشتی بر ما مگذار ای پروردگار ما و بر ما چنان باری را مگذار که توان برداشت آن را نداشته باشیم از گناهان ما در ما را ببخشا و بر ما کن توی کافساز ما پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان